بخش چهارم زندگی با بیشعورها فصل هجدهم کار کردن با بیشعورها بازم یه بیشعور دیگه جورج در جلسه معارفه رئیس جدیدش اگه بیکار، بازنشسته یا خیلی پولدار نباشین، احتمالاً مجبور به کار کردن با بیشعورها هستید و هنوز تعداد بسیار بسیار کمی از مردم میدونن که چطور باید با بیش شعورها کار کنن. ما درباره این مسئله مهم آموزش ندیدیم. فرض شده که خودمون به تنهایی از پس اون بر بسیاری از مردم میخوان بدونن که آیا میشه با بیشورها کار کرد و در عین حال حرمت و شخصیت خودشون رو نیز حفظ بکنن. آسون نیست، ولی خوشحالم که بگم امکان پذیره. نقطه آغاز کار روی خودتونه. برای اینکه به خوبی از عهده بیشورها بر بیایید، باید هدفمند و با انگیزه باشید. باید از خودتون از این دست بپرسید. یک چقدر کارم رو دوست دارم دو چقدر به حقوقم محتاجم سه آیا این کار به عذاب تحمل این بیشور میارزه شاید پس از مرور این پرسشها وسوسه بشید که کارتون رو رها کنید و دنبال کار دیگری بروید اما هدف از این یادآوری این کار نیست چرا که اگه کاری به خوبی کار قبلیتونم بتونید پیدا کنید احتمالاً مجبور خواهید بود. بازم با بیشورای دیگه ای همکار بشید. هدف از این پرسش اینه که اراده شما رو برای سر و زدن با بیشورایی که اطرافتون گرفتن تقویت کنه. گام بعدی بررسی گزینه های پیش روی شما برای این کاره. این گزینه ها چند یک. میتونید با همکار بیشورتون رقابت کنین. این کار پیشنهاد نمیشه. چرا که به این معنیه که شما هم بیشعور بشید تازه در این صورت هم بیشعور تازه کاری بیش نخواهید بود و در مقابل بیشعورهایی که که در انواع دروغگویی، حق بازی، گردن کلوفری، فرافکنی و مسئولیت ناشناسی استادن کم خواهید آورد اگه بخواید اونا رو در زمین خودشون شکست بدید، موجبات شکست خودتون رو فراهم کردید پس حتی به فکر چنین کاری هم نباشید دو میتونید دست به کار اصلاح بیشعور ها بشید به عنوان درمانگری که با هزاران بیشعور سر و زده به شما اطمینان میدم که اصلاح بیشوری که از بیشوری خودش پشیمون نشده محاله تازه وقتی یه بیشعور مسممه به درمان بشه باز هم اصلاحش کار سختیه بنابراین کار اصلاح بیشورها را به درمانگرای هرفهی بسپارید و به تعداد افراد شریفی که به خاطر تلاشهای قهرمانانه ولی بیجاشون برای اصلاح بیشورها آسی و فرسوده شدن اضافه نکنید. سه میتونین یاد بگیرین که خودتون رو از شر بیشورها حفظ کنین. این کار شامل حفظ انسانیت، شخصیت، شعن و شادمانیتونه. برای این کار باید تمام زیرکی و مهارتتون رو به کار بگیرید. هنری که اگر موفق به یادگیری و انجامش بشید میتونید تا مدتها بعد از گم و گور شدن بیشورها به کار خودتون ادامه بدید. نخستین قاعده یک کار با بیشورها به یاد داشتن این نکته است که ظواهر برای اونا در حکم همه چیزه. تظاهر به علاقه، همکاری، مهربانی، احترام و حتی ترس از اونا معمولاً برای راضی نگه داشتنشون و اینکه فکر کنن فوقلادن کافیه. اما این تظاهرها باید با نهایت مهارت اعمال بشه. چرا که بیشورها خودشون در تمام عمر تمرین تظاهر کردن. از این رو در این فن استادن و خیلی راحت میتونن تظاهر رو تشخیص بدن. دومین قاعده کوشش برای ارتباط مناسبه. ارتباط مناسب از نظر آدم بیشور یعنی اینکه باید مورد توجه قرار بگیره. مهم باشه به حرفش گوش کنن، با نظرش موافق باشن، شش کنن، به او قوت قلب بدن و تبریک بگن. بنابراین در گفتن چنین جملاتی به اونا اقراق کنید. از شما متشکرم. حق با شماست. شما معجزید. چطور چنین چیزی به فکرتون رسید. معذرت میخوام البته هرگز انتظار نداشته باشید که چنین چیزایی رو از بیشورها بشنوید این نوع ارتباط با بیشورها یک طرف است گام سوم در تعیین سیاست مناسب برای ارتباط کاری با آدم بیشور اینه که مشخص کنید نوع ارتباطش با شما دقیقا چگونه است رئیستونه یا مرعوس یا همکارتون با هر کدوم باید یه طوری رفتار کرد چهار، راضی نگه داشتن رئیس بیشعور، بیشعورها به شدت نگران قدرتشونن و نسبت به تحدیدهای واقعی و غیر واقعی علیه قدرتشون بسیار حساسن. هرگز کاری نکنین که قدرت رئیس به خطر بیفته. در عوض یاد بگیرید که با او مثل یکی از خدایان یا عضوی از خانواده سلطنتی رفتار کنید. خودتون رو نسبت به اهداف و برنامه شیفته نشون بدید تا اونجا که ممکنه هر روز بهش سلام کنید لازم نیست که از اون طرف بام بیافتید و مثلا عکس رئیستون رو روی میزتون بذارید یا دفع چشم زخم براش بگیرید اما از تعظیم و تکریم ها به موقع قافل نشید که روزی به درد خواهند خورد سعی کنید هر جا که ممکنه رئیستون رو با لفظ قربان خطاب کنید اما حواستون باشه که یه وقت با بکار بردن عباراتی نظیره لطف و بند نوازی حضرت عجل مستدام در مجامعی که مناسب این لفاظی ها نیست موجب خجالت وی نشید با چنین بازیایی رئیستون فکر خواهد کرد که شما فوقلاده اید و به شما مزایای ویجه ای خواهد داد مثلا اجازه خواهد داد که روزهای عادی قبل از ساعت هشت شب به خونه برید یا هفته ای دو سه بار سر کار با شما نهار خواهد خورد. حتی شاید اجازه بده که از تمام مرخصی های استحقاقیتونم استفاده کنیم. پنج کار کردن با زیردستان دستان بیشعور. اینجا طرز کار دقیقا برعکس میشه. باید با اونا مثل بچه های کوچک، حساس، زودرنج و ترسو با قد و آدم بزرگار رفتار کرد. تا اونجا که میتونید از داد زدن بر سر اونا و یا گیج کردنشون بپرهیزید. این کار فقط اونا رو خواهد ترسند و کارها رو مختل خواهد کرد. زیردستان دستان مدام از کارشون ناله میکنن. به اونا یادآوری کنید که شما هم وقتی در موقعیت اونا بودید، همون کار اونا را انجام میدادید و بالاخره روزی میرسه که اونام زیرردستایی برای انجام این کار داشته باشند. اما تا اون زمان باید به همین کارشون ادامه بدن. اگه باز هم به قرض زدن ادامه دادن اونا را از حق خوردن قهوه و امتیازهایی از این دست محرم کنین و اون قطع پیش برید تا دست از قرلند بردارند. بیشعور زبردست همچنین ممکنه بخواد با انجام ندادن وظایف کاریش شما را تحت فشار قرار بده. در این صورت او را به کناری بکشید و با اقراق فراوان براش توضیح بدید که تمام سازمان به کار او احتیاج داره. این قبیل حرفا گرور و خودپسندی اونا را ارضا می کنه. اگر این کار افاقه نکرد، تنبیه کنید. مثلا بگید هر روز باید۱ دقیقه زودتر برای درست کردن قهوه در محل کار حاضر بشه و کمک های غیرنقدی شبعید رو به صورت زغال سنگ به او اهدا کنید. سپاس هر وقت شنیدید که یه دفتر جدید تحت مدیریتی یکی از همکاران بیشعورتون در سازمان ایجاد شده به نظر او برید و با تعریف و تمجید از بیشعور زیر دستتون او را برای کار در بخش جدید بسیار مناسب توصیف کنید. به این صورت میتونید همزمان دو تا بیشعور رو سر کار بگذارید. شش کار با همکاران بیشعور این قسمت از همه سختره. با اونا نمیشه مثل رئیس بیشعور رفتار کرد و نمیشه مثل مرعوس بیشعور. اگر خیلی محترمانه با اونا رفتار بشه پرروتر روتر میشن و اگه با تحکم با اونا رفتار بشه بهشون بر میخور. مثل همه بی شورا این آدمام دوست دارن طوری رفتار کنن کنگار آقا بالاسر شما هستن اما در واقع مثل بچه کوچکی رفتار میکنن که اردنگی لازم داره اما در مقابل این وسوسه ای استادگی کنید با اونا طوری رفتار کنین کنگار با یه مهمان ناخوانده طرفید مثل وقتی که مادر همسرتون میهمانتونه، باید با اونا با سیاست و در این حال بسیار جدی برخورد کرد. برای این منظور باید همه هوش و فراست خودتون رو به کار بندازید. باید حد و مردها رو مشخص کنین و تصمیم بگیرین که چگونه مسئولیتها رو با این بیشعورها تقسیم کنید. کاری که البته نیازمند شناخت کامل آرزی بی مثلا در جلسات میتونید با حمایت از همکاران بیشعورتون در لحظات حساس امتیازهای خوبی از اونا بگیرید. چنین چیزی معمولا در آغاز یک پروژه پیش از اون که اونا شانسی داشته باشن تا ایده خاصی رو از خود کنن پیش میاد در چنین موقعیتی چیزی در این مایه ها بگین با توجه به چیزی که ایشون گفت من از هرهشون به طور کامل حمایت میکنم اگر ممکنه در مورد مراحل اجرایی اونم توضیح بدید که نهایت استفاده رو ببریم که البته او هم قادر به انجام چنین کاری نخواهد بود چون اون طرح رو به طور ناقص از یه نفر دیگه دزدیده اما از اینکه هواشو داشتید چنان خوشحال میشه که متوجه نیش و کرایه‌ی نهفته در حرف شما نخواهد شد. بزرگترین معزل در کار کردن با بی‌شورها اینه که محال پا روی دم آدم نذارن. وقتی که همکار بی‌شورتون بعضی از گزارشاتون رو میدزده یا به رئیستون میگه که احتمال داره معتاد شده باشین، چیکار میتونین بکنین؟ بدترین چیز اینه که آدم به روی خودش نیاره که چنین مسائلی روی داده. در درواز با او رو در رو بشید و به خاطر شوخ فوق فوقلادش از او تشکر کنید به او بگید داشتن همکاری که اینقدر حرفای خندهدار و کاری بلده نعمتیه که نصیب هر کسی هم نمیشه یادآوری کنید که شما بودین که سوژه شوخی و مذهکش رو جور کردید بعد با خنده بپرسید که از مشت بیشتر خوشش میاد یا کفگرگی و البته هیچ کاری هم مشغولیت فکری و وحشت او درباره کاری که شما در نظر دارید علیه او انجام بدید بیچارش خواهد کرد. البته راهکارهای تحمل و سر کردن با همکار بیشعور بسیار بیشتر از این موارده که شرح تمام اونا در اینجا نمی گنجه. برای مطالعه راهنمایی ها و تذکرات بیشتر در این زمینه، حتما کتاب های قایقرانی در فاضلاب محده، راهنمای شنا با کوسه ها در میان فازولات و چگونه شخصیت خود را حفظ و ضد ضربه کنیم را بخون.